سلام سلام یا چطور؟ مامونم همه چی رو فهمید آقا قصده اومد اینجا یه چیزای در مورد آرش گفت بداشتی که مامانم همچیو چی فهمید شادی جان اطلاعات آرش رو به من بده من همین اینترنتی بگو به ما بگیرم خودش قبول کرده آیت بره خطرناکه مونده وزش باش برمیرم از اتاقش پاسپورتش برمیدم بعد از صفحه برش می‌گیرم بگیرم می بفرستم پاسپورتم ببرم آرش باش سلام خوش آمدی بابا ایلک ببیرم به از توی خونه بدون پیشمان دمو بیرم از پلیو بیم بالا. من بابا اصلا خیال نمیکنم که از پیشم رفته فکر کنم همیشه بقل نشسته نمی داره باما حرف میزن چجوری بمونیم تو این خونه بدون پشمان بابا؟ چه من ببینم اگه دا زنده بود چه کارا که باز تو نمیکن آره؟ esto بیا اینجا اونجا ببونی دقیق میکنی بچه هم ناراض باش بیا داره خوابش میاد چونم تو اقلن بابا جان این گلدخترتو داری اصلتو داری شوهرتو داری من چیکار کنم که تو تعمونده آخر عمرم باید بسوزم و بسازم ناشکری میکنم خدا یک شکرت دهن روزه دادی گرفتی، شکرت بابا میگم بالاخره معلوم شد سامان قاتله یا نه؟ نه هنوز من که میگم خودش با اون کینهی که از شما داشته عصرش با پشمان کتب کاری کرده حتما شب رفت به سراغش دیگه کن بابا از ماهی سرا چه خبر؟ ای الحمدالله چرخش میچرخه بدون پژمان چجوری کار میکنن اونه؟ کار گراش بیکار نشدن سپردمش به دست حسابدار اونجا خانم جواب مردگی پژمان خیلی به اعتماد داشت حالا دیگه شما باید یه بهش بزنید نباید بذاریم اونجا چرخش نچرخه حال یه اده آدم زحمتیشون اونجا کار میکنن حقوق میگیرن اگه کاری هده دستم بر نمیاد من چی کار کنم بابا وقت اون به اونجا باشه بابا بالاخره یه عده زحمتکش اونجا دارن نون میخورن خداحافظ خداحافظ چیزی شده فریده چرا حرفی نمیزنی؟ چه حرفی؟ خب. چیزی بگو چیزی شده؟ چی بگم؟ شما که راضی رونا هم که خودش گفته بیا من دیگه چی بگم؟ خب. چرا اصلا هم خوری؟ شما خودت همیشه میگفتی من یه اشتبار دوبار تکرار نمیکنم حالا چی شد؟ خب من با دادن فرصت دوباره مخالف نیستم درزم حتما رونا فکراشو کرده دیگه دیده به دردش نمیخوره. ولی دیشب ندام گفت رونا هنوز آرش رو دوست داره. آقا چی میشه؟ هوا 180 درجه شواز میشه؟ چه میدونم والله. خب حالا حتما دیده به دردش نمیخوره دیگه. نه. این دختر بازم داره اشتباه دفعه پیشش رو تکرار می‌کنه. از کجا مطمئنی؟ برای اینکه من مادرم. دلم بهم به میگه رونا از ته قلبش راضی نیست. مگه تو نمیگی رونا دیگه راضی نیست؟ منم من میدونه چیکار باید بکنم. به هر حال من حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم. همین که دیگه به آرش فکر نمی‌کنه من خیلی خوشحالم. این پسر راست قابل اعتماد نیست. دیروز از رامین شنیدم رفته 50 تومن از حساب مشترکشون برداشت کرده. بدون رضایت اینم باشه. ولی من بازم با اومدن کامیار موافق نیستم. من یه سر برم کارخونه، خداحافظ. باز دوباره حالت خوب شد راافتادی ها میری کارخونه هر سوجوش می‌خوری دوباره برمیگردی. از بس تو خونه موندن خسته شدم، شلافه شدم. خدافس. خدافس. آرش و هم زدیم چون به درد هم نمیخوریم بعد چی شد که فکر کردی کامیار به درد میخوره؟ ببین خواهی به آرش فکر نکنی باش نکن اصلا کاری باش نداشته باش ولی مجبور نیستی با کامیار ازدواش کنیم وقتی اصلا دوستش نداریم کشته موردش نیستم ولی حتی که همدیگه رو میشناسیم اینجوری تکلیفم با زندگی روشندتره خسته شدم از این بلا تکلیف رونا راستشو بگم من یک کلمه از حرفاتو باور نمی کنم پهیم داری لج میکنیم با کی؟ با خودت با آرش؟ نه اینجوری نیست رونا تو خودت هم می‌دونی کاری که داری می‌کنی اشتباهه نکن ندجه جسی می‌دین تلفن جواب بدم بله من فقط می‌خوام بدونم چی شد که یه اون نظرت راجع به آرش عوض شد تیکه دلم نمی‌خواد راجع به آرش حرف بزنم من پرپنده رو بستم دو زندگی نه بستی اگه باعث نمی‌بودی به پیشنهاد من جواب ما صراحت نمی‌دادی. حالا علی چیکار کنی؟ پشیمون شدی از پیشنهادت؟ اگه پشیمون شدی که بیا اون کیفو بده به من بر دنبال زندگی کاری به کار آرشته داشته باش. میدونم از دست من ناراحتی. فکر می‌کنی به زور دارم وارد زندگی پیشم تو واقعاً فکر میکنی تو این زندگی خوشبخت میشی؟ خوشبخت می‌شیم. حالا زنگ زدم بگم امشب میخوام بیام خونه‌تون. راستش نمیخوام خیلی دیر بشه که بود و نبوده کیف چندان فرق رو به حالم نکنه درزم اگه بخوای منو بازی بدی که مثلا زمان بخری آرش فرار کنه اینو بده. هر جا بره وقتی بفهمن قاتل برش می‌گردونه. شادی دار می‌زنم. بله. بفهمی. شما کی هستی و کی کار داری خاله؟ پشما نا کجا گذاشتم. اونجا. شما چه نسبت با آقو پشما ده؟ شما خواله باقیم... خالی خوشتنم... خانو... اینجا مردی... خانو چاو مردی... خانونجا اما بیا پایین خواهر آبا پشمانو باید خانون خانون آقا کریم بجا con la شیل اتفاق بر بردارم افتادم. اقتر داری. با خودمونم باورم نمیشه چه برسته به شما. خطر. من تو دنیا آزارش به ایشکی نمیرسی. من نمیدونم اون نامرد چه جوری دلش اومد این کارو باش بکنه. بخور این رنگتون پریده. ما به باد رفت با چه عشقی میمد اونجا بمیرم براش راستش بعد از رفتن آقا پیشمان ما خیست کردیم که کارا رو پیش ببریم ولی موقته بابا که میگفت ازشون شکایت کرده بله ولی به هر حال اون زمین دولتیه میخوام بفروشنش بگرنه نمیشه اونجا کار کرد میدونم هم میخوام اونجا را نگه دارن خب کار کنیم مشکلش چیه خب مشکل اینه که یک کسی باید کار قانونیش انجام بده که به جای آقا پیشمان بتونن توی مزایده شرکت کنن خیلی دوندگی داراره سخته و رو برم اون هم که داره اصلا نمیتونم بجمان ساخته شد و دوست این کارا همه این جون و عمرش و شما نمیخواین کارشون رو ادامه نه، نان بلد نیست هم از نمیتونم خب حیف اون همه زحمت نیست هدر بره به قول خودتون اینقدر واسه اونجا زحمت کشده و کار کرده تو همه ازاد چیکارم رو بکنم؟ اونجا رو از دست ندیم به خاطر خوشحالی برادرتون هم شده اونجا رو نگاه مگه شما قاتل برادر منو دستگیر نکردی؟ چرا زودتر پرونده‌ش نمیفرستین نمی‌فرستید دادگاه تا تکلیفمون معلوم شد شما وضعیت وضعیتمون چه شکلیه پرونده‌اش هنوز تکمیل نشده یعنی چی تکمیل نشده مگه شما شک داری سامان قاتل برادر منه بله شک داریم شک داری؟ این همه مدرک علیه اون آدم وجود داره یعنی چی شک داری برای اینکه مدارک متخن علیهش وجود نداره خودش هم که به کل کار کرده متخن یعنی چی بعدم معلومه که اون این انکار میکنه دیگه چون چه چند انتظار دیگه ازش داری؟ فقط طرف اون نیست. ما داریم همه شواهد و مدارک کنار هم دیگه میذاریم تا به یه نتیجه بهتر برسیم. با شرایط موجود ممکنه به قید وثیقه حتی آزاد بشه. آزاد بشه. شما میخواین قاتل برادر منو خیلی راحت آزاد کنی؟ من نه، این تشخیص قاضیه. قاضی وقتی ببینه مدارک کافی توی پرونده علیه متهم وجود نداره، اجازه اینو میده که با یه وسیقه مناسب به طور موقت آزاد بشه. من اصلا نمیفهمم. اگه سامون قاتل برادر من نیست پس کیه؟ کی غیر از سامون با پدر و برادر من دشمنی داشته؟ خودش اومده اعتراف کرده که دنبال انتقام بوده. اینو برای شما مدرک حساب نمیشه؟ نه. درسته. اون انگیزه کافی واسه انتقام گرفتن رو داشته. خودشم به این قضیه اعتراف کرده. ولی این دلیل نمیشه که اون قاتله. ببینی خانم ما دوباره داریم تمامی شواهد و مداره که کنار همدیگه میذاریم ممکنه یک سری چیزها از دید ما پنه مونده باشه امیدوارم اینطوری بتونیم گره این برونده رو باز بکنیم امیدوارم دفت خونم فهمیده منو شادی خواهر برداریم فهمیده قطع کار تو بوده نه هنوز نه ولی ممکنه بفهم تو دیگه نباید بمونی اینجا باید بریم برای فردا بروازی جای خالی داشت همه ساعت وقتی دوباره دیدمت فکردم یه مجزه اتفاق افتاده امنم که مصیبتی مسیبتی قدومت دارم چه آرزوهایی داشتن کسی از آینده خبر نداره همینطوری که فکر نمی کردیم هم رو ببینیم بازم معلوم نیست چی پیش میاد من برم دیگه راه برگشتی ندارم تو شاید هیچ وقت دیگه نتونیم به باش کنیم نباید نا امید بشیم فکر بگرنی زندگی من باختیم من که باختم نمیدونم تو چطوری هنوز امیدواری چون من نمیتونم بدون امید آمه بدم شایدی پاسپورت تو آورد تمیامی برمت برود کن اوش. نمیدونم چه اتفاقی بین رونا و آرش افتاده ولی من مطمئنم که همونز هم رو دوست دارن زم خبر دارم که پدر رونا اومده اینجا چیکار کرده ولی بهش حق بدید آرشم با رونا درست رفتار نکرد حق و شوهر شما بود من از اول هم گفتم ما واسه هم نیستیم. من فکر می‌کردم آقا رش یا رفتارش عوض شده. ولی مثل که نظر شما هم برگشته. من از اول موافق این وسط نبودم. ولی به نظرم شما مثبت شده بود نظرتون. به هر حال الان موافق نیستم. آخه چه اتفاقی افتاده که ما ازش خبر نداریم نه. ولی من مطمئنم یه اتفاقی بین رونا و افتاده که من ازش بیخبرم طور خود شما اگه ازش خبر دارین خب به من بگین شاید بتونیم به این بچه ها کمک کنیم حیفه اینو هنوز خیلی همدیگر رو دوست دارن آخه چطور میشه یهو او به اینجا میرسن چشمت روشن. چه نوهای خوشگلی داری؟ پروشناییت باشه نمیخوای یه ماهینش بکنی؟ باستا یه دکتر مجانی که ازت که چیزی کم نمیشه خب نگرانشه نمیخواد نگرانی باشه نگران خودت باشه میبینی شاید برز راه رفتن سخت شده اگه همینجوری جیری بری جلو همین دو قدم هم دیگه نمیتونی راه بری خبر جدید خبر جدید این که آرش و شادی خواهر برادر چی؟ بله خواهر برادر واسه که میدونی کی بهت گفته خودم فهمیدم یعنی موتور آرش رو تو خونه شادی دیدم عجب من که نمیفهمم خودم هم نمیفهمم پیش گفتم که آرش چرا اون چیزی من دروغ گفتم گم حسابو ندارم قسمس خونت سرقت کنم از این لا و چرت و یعنی همه رو دروغ گفته آخه چرا نمی می‌ذارم از دیروسارا دیگه جواب تلفنم هم نمیده یه چیزی هست که این خواهر برادر از من پنهان میکنن مطمئنم که با مرگ بچم ربط مستقیم داره رزنم باید بریم پیش پلیس. هر دو تا شما بیخواده بازجویشو میکنن من باید با این دختر با شادی حرف بزنم بابا اومدی؟ سلام بابا جون سلام بابا جون رفتی شرکت حسابی حالت گرفته شد داغون شدم بابا یه هم رفتم آقای بهم گفتن سامان ممکنه به قید سند آزاد شد هنکه بهت گفتم بابا جم سند و اومدن که درست حسابی برای بازداشتون به سر وجود نداره یعنی چی وجود نداره بابا خب اگه سامان این کارو نکرده پس کی کرده بعدم چجوری پلیس از اون موقع هیچ مدرکی پیدا نکرده نگار نگار داداش من مرده این خیالشون نیست. نمیخواد این حرفا بزنی ای پول جان بالاخره ما که پشت ابنه نمیمونه تو الان باید نگران بچت باشی. امو. خدا خدا رو نگه داره. هر وقت که شیر نخورده. این بچه یه خواهر برادر میخواد چه خبره عمو؟ ز اصلیه ماهش بشه بعد بگین این حرفو. همه یه بچه پیدا میکنن و یه بچه میارن که بگن اجاقشون کور نیست. عمو درست میگه. یه بچه کمه. باید یه خواهر برادر داشته باشه تا حسابی پشت هم باشه من الان برادر داشتم چی شد بابا پشت و پناه هم شد اونه جان با سرنوشکه نمیش نمیشه جنگی اتفاقی که افتاده شما من هم باید بریم یک جایی کجا میخواییم بریم قراره منو بگاره به فیزیوتراپی پام زود برگری من تنهای دیبونه میشم آشو باشه خدا. خدا. کجا به سر آمد بهت که گفتم من باید این رو ببینم باش حرف بزنم آراب. لحظه هایتان را مملو از عطر آیات الهی کنید با اپلیکیشن ایران صدا تلاوت های مندگار با صدای قاریان برجسته ترجمه فارسی به همراه آموزش حفظ، روحانی و تجویر اپلیکیشن ایران صدا را از ایران صدا داتایا کنید. خیلی حرفی بود که میخواستم بهت بگم نمیخواستم مادرت بفهمه من همه حرفای تو رو شنیدم یک کلمشم باور نکردم من نمیفهمم برادر تو وقتی تو بیمارستان اومد پیش من کلی وقت کنار من باد هیچی نگفت وقتی من ازش پشتم که تو کی هستی کلی دروغ و دقل بار من کرد چرا؟ من نمیدونم چه بگم که شما حرف منو باور کنی راستشو رو بگو وگرنه هر دوتون رو به پلیس معرفی میکنم. پلیس چرا اگه ما چیکار کردیم؟ ب گفتید مدت یکی شما یه چیزی رو از من پنهان میکنید من مطمئنم شما میدونید که قاتل بچه من کی بوده؟ برای همینم بود که سامان رو سعی می پیش من بی گناچل بدید من هیچی از شما پنهان نکردم دروغ اتال بسته خستم کردیم. من میدونم که تو رقم مضاعی دا. به سامان دادی وقتی هم که پژمان اینو فهمیده حسابی از دست عصبانی شده بعد دعواتون شده بعد شب وقتی که سامان و کارگر رفتن رفتی پیشش به از و جز. بعدم دعواتون شده بله منظورتون چیه؟ هر کسی میتونست بچه ای من از اون پنده کنه بیرون حتی تو. من اونجا نبودم. اصلا چرا باید اون موقع شبی رفتم شرکت؟ وقتی هر دوتون رو دادم دست پلیس همه کی میشه. آقا واسه من به کی قسم بخورم که من روح هم از ماجرای درگیل و دعبای اینا خبری نداشت. از فردم. دیگه نمیخواد بری شرکت. من بالاخره میفردم که شما خوار برادر چه چیزی رو از من فنان میکنید. مامان رونا اومده بود ببینه چی شده که بین آرش رونا به هم خورده. منم به دروغ گفتم به هم نمیخورن دلم بر آرش تنگ شد؟ همیشه این شبا کنار هم بودیم. الان بچم تنها؟ نمیدونم چه میکنه زنگی هم بزنم جواب نمیده انگارو نمیخواد ببینمش نه قربونت برم اینجوری نیست نگیم اینجوری آمان جان آرش میکشه باشم اون رو در روشه ولی من باید ببینمش معلوم نیست چی پیش میاد. تو شده باید ببینیدش یک کسی هست که میتونه بهتون کمک کنه آرش رو ببینی. از وقتی اومدی سکوت کردی یا چیزی شده؟ ایت گرفته فردا پرواز فرد داره مادرم چند بار زنی زد جوابشو نمیدونم چی بهش بگم من هر چی بعد میگفتم و گفتم دیگه خود دنیم دیگه هم حرفی ندار به بیلیت ایت. ایتونی ما من باور نمی کنم. تو چیکار کردی آرش ببخش این همه مدت درد بزرگ رو تو خودت نگه داشتی چی چقدر گفتم تو آرش؟ چی شده؟ چیکار میکردم اما؟ میگفتن زدم آدم کشتم آره دیگه این حرفو نزد تو چطور به خودت اجازه دادی به پدرش نزدیک بشی؟ این کارا چیه که کردی آراج؟ نمیدونم اصلا نفهمیدم چی شد این جریان حیمن رو با خودش برد تا الان الان که میبینم نراه پس دارم نراه پیش همه ها چیکار کنم یکی به ایرانت حکمت اعدامه فرار میکنم پس رو چی میشه بند خدا که نواد پاسوز من بشه من به خودشم گفتم گفتم با من به جای نمیرسی برو دنبال زنده ایت سمخای پارو همشیز بذاری رو عشق من خوهر چیکار کار کنم ماما شما بگو برو خودتو معرفی کن من میرم خودم معرفی میکنم ولی شما میدونی تایش می تیرسن می خوام خدا رو شد که اومدی بیرون شادی و خونه وادش خیلی لطف کردن و اگه نواد میمونم باقی نمیشون گم باقی من نمیدونم اینا چجوری راضی شدم بیان برای من صنعت بزنم شادی خانم خیلی اصرار کرد متبالا به این نتیجه رسیدن که پیشمانو تو نکشتی بله سلام سلام چطوری تونستی از موبایل خودت منو بگیری؟ آزادم کرده راست میگی؟ چه نگفتی بیام جور در زندان؟ گفتم دیگه نکشونم تا اینجا خواسته فقط منو بکشونه. ببخش <تصفح> <صفح> حالت چطور خوبی؟ خوبم خودشوکتو خوبی نمیدونی چقدر خوشحال شدم آزاد شدی ببین من واقعا از تو خونه عادت ممنونم اگه شما نبودین حالا حالا عادت میموندم اون تو جای آدم بیگناه تو زندان نیست میخوام تو اولین فرصت از مادر تشکر تشک خب حالا تو مادرت صحبت کن هر وقت اجازه دادن من موضوعی هم ببینمشم باشه خدافز خدافز ماما آقا عرش کجا یه کاری براش پیش اومد که رفت سفر تاره من باید بابت همه اتفاقایی که این مدت افتاد ازتون عذرخواهی کنم شما حق دارید دست من ناراحت بشین. پیش خودتون فکر می‌کنید من با احساسات شادی بازی کردم. من واقعا شادی رو دوست دارم. بابت کاری که با پجمان کردم خیلی پشیمونم. مورم نمیدونم شادی به شما گفته یا نه من وقتی بچه بودم پدرم از دست دادم همه یه روزهای بچگی من با کینو انتقام گذشت ولی واقعا نمیخواستم این اتفاق براش بیفته. من نمیدونم کی کشتتش شما و در حق منسانیت من کردیم برام من اون سنت گذاشتیم که نمونم تو زندان تا عمر دارم مدیونتونم اصلا گفتم امروز بیام آقا ببینم هم ازشون تشکر کنم اموزخوی حالا الان که نیستن ان هر وقت اومد امیدوارم زودتر قاتل پژمان پیدا شه سند خونتون آزاد شه منم منم بی‌گناهی ام ثابت شه ازو بدین رسماً میام خوشاگوری شادی امیدوارم بیگناهی شما هر چه زودتر ثابت بشه همه چیزم ختم به خیر بشه بیشتر گیره. من حتما باید برخش حرف بزنم کجاست؟ مسافرت حالا من خودم بهت خبر میدم. میخوام من دیدن قاسم. باید بوش با حرف بزنم. قاسم که اصلا خبر نداشته ماجرای جسای بابای منو انبارو. تو میای میایی نه خودت بری بهتره خدافز خدافز, خدافز. سامان حالا خونت سوخته کجا میمونی؟ نه چی تو پاکه نمیخوابم تعمیرش میده چته سره اون دګی راو من در د با باندې څه خیلی طول راوي چې اوس هم اصلا حالش ونیست ولنه میدونی فراری یعنی څه نمیدونی چه بلایی داری سر خودت میاره تو گم کانوم قانون این برا پیداد نشه گم شو کار کامیار بدبختی شد فقط باید فکر این باشی که بری خودتونو نجات بدی الان میفهمم پسرم چرا انقدر تو رو دوست این دیگه آخرین بار یک همیگر میبینیم